بسم الله الرحمن الرحیم و و سلام و اعلا رسول الله و آده قیبین و قادرین و محسومین و در خزارمت اللهم و فرم راجمی و رحمنا به رحمتی که و کنم که چون این روایت واحده در کتاب کشی آمده که امنا معاشر بنی هاشم معاشر بنی هاشم نعمه رو و اصحاب نام به سببه ما وقتی این رو یه توضیح دیدیم و البته سندش که کاملا واضحه که ضعیف است خود مرحومه اصولا این سند یعنی نخل صدق از اصحاب ابن یعقوب بس این یه کشی موجوده چرا چون خود کشی این سن تضییق کرده بنابراین خود کشی خیلی این رجالی رو کمی خودش مثلا میگه قال نخل صدق و کان اهل ارتقا قال حدثنا اصحاب ابن یعقوب و کان اهل ارتقا امم خودش ده اصحاب محمد معاذ اصحاب محمد بصری و کان اهل ارتقا قال پس این سند به لحاظ اشکال اشکالش واضحه البته هم در همین کتاب کشید این قصه امام باقر نه کلی این زیر رو هم نداره همچنکه این سند بعدی از امام صادقه اما در اون روایت امام باغر اون زیر نه نداره. اما سر رو آمده که بیجور سوزیه شدهش شده شده. پی این مناسبه از گفتیم که بعضی از نکات هست حالا شده. یا این نباشه یا به این زودی گفته نشه لاغل در حد نکته توضیح به ریتروی می کشه یه هم برای خود من همهنوز مبهمه نه این کار باید چون احتیاج به کارهای خاصی داره ما فقط در حد این که نکاتی یا برای به اصطلاح منشع این تحریک فکری بشه یه حرکت فکری در این جد انجام بگیره که نشانه شاید به نتاش واضحی دارست حرف کردیم که اول ساعت نسردن سباهه که آوایان متعرض شدن در فحارس ما مرحوم نجاشی فرنده نسردن سباه قبل قاسم بلخی قادر این قادر بودنش احتمالا از همین کشی گرفته چون در مورد نهاره در ارتفاع این احتمال هست یعنی به عبارت نخوان نخوان بگم نیست تا حالا ما ها که این مخواه مخواه نجاشی گفت ما تحبودن قبول بکنیم اگر واقعا شاگردش کشی باشه این دیگه اینه خبر خارجی یعنی خبر حسیه پس نجاشی از کتاب کشی گرفته کشی هم استادشون یه استادوان همه ارتفاع ربا همه حیاشی که از کردن در این نسخی که از کتاب کشی هست همینطوره در این نسخه که اخیراً جامعه مدرسین چاپ کردن رواهن های کشی داره به جای اگرشی امبت جنابای زنجانی از زنجانی که این نصف رو شاک کردن یه دارن از خود کشی از خود نجاشی که اسانید رو مفصل، یعنی نصف رو مفصل اونجا مقارنه کردن اون چه که الان چاپ شده یک حسیله اون بحث اشاره به اختلاف نصف ندارن برها من چون الان دقیقا نمیدونم چون خودم به نسخه متعدد ندارم از نجاشی که مرافیه نمیدونم این آیا واقعا اختلاف نسخه بوده چی بوده الانم برای من هم واضح نیست و ایشان از کجا خودمان روی عمل کشی این یعنی نسخه که چاپ شده چون از که اون نسخه مفصل هم چاپ نکردن دیشون. چون ممکنه این تخصیح قیاسی باشی کسی برداره خاشی نرشده امای کشی نمیدونیم چه نسخه بوده اونی که ما الان میدونیم. این نسخه ای متوارق بوده در نجاشی که در اختیار استاد بوده، در اختیار صاحب قاموس بوده، در اختیار سال تقرین و نقال بوده. و چند تا نسخه دیگه که من به کتاب نگذاشتم، اونا نسخه خصوصی نسخه من نداره. از مجموع رجال گفتاری قدس الله سره. خوب کتابی مجوا رجال میشه. ایشون هم همینطور داره رواهل هم عیاشی همون مقال هست معروف به رجال ابو حبیب رجال منتحل مقال چاپ شده سالهاش چاپ سنگیش کتاب خوبی ایشون از نجشنی نغراورد عیاشی اینایی که من دیدم به استثنای نسخه جامدرسین چون نسخه جامدرسین تحقیق شده زای تحقیق کردن، در این مقداری که چاپ شده شرح داده نشده که این چه نسخه بوده که ایشون ازش نغرا کرده لذا الان من نمیتونم چیزی راجب اینجا به احسا توییل بدم نسخه فرقی نگیدیم این چندتایی که من دیدم مثل مجموع رجال و مثل تتاوالکوی و تنبیه و قاموس در اینها همشت این نسخه عیاشی هست تقریب میفردم رواهن و عیاشی له و کتب منها کتاب و معرفت ناغلی و کتاب و فرغشیه این راج به این مطلب اخبرنا حسین نه احمد بن از عکرم ایشون رو نمی‌شناسین کلا نمی‌شناسین اون اگر بخوام راجع به مشایخ نجاشی بحث داشته باشه تا حد زیادی ها بالاخره همیشه اختلاف نظر هست مرحوم استاد اونهای اخری در مقدمه در جلد اول تهذیب ال نحوه مفخر مشایخ آیه خویان تو معجم مشعره نجاشی رو آوردهن اما ایشون ما تفسیر کرده آیه کوری که از تهران باوردن مثلا خلا در قرآن موردش اشاره کرده اما آیت‌جهی تحلی رو به کلمات و توسع و, و تذیه ایشون میگه لمه در, در تراجم اسم ایشون پیدا نکردم ایشون خب خیلی واقعا زحمت کشیدن با اینکه اون زمانا کامپیوتر نبود شخصا خیلی منابع رو نگاه کردن از اون راه تا ما ها حسین الدن احمد نهدیه که الان واقعا ما قیل از حالا اینکه اسمیشون رو میبشنسیم مشکل دیگری که داریم اصلا این روشون مال بوده جای دیگه بوده شیخ هم از اصلا نقل نکرده از مشایخ منفرد نجاشیه شیخ از شخص نقل من حتی احتمال میدادم که این حدسان جعفر بن محمد مراد جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی باشه چون توضیحات که عرض کردم خود کتاب کشی و عیاشی خود کتاب رجالی فارسی چون در کش و طبرنگ تاریخ بوده بود به توسط این پسر عیاشی رفته که نگاه بکنید در کتاب اثر سن... مری کتاب شیخ و نجاشی توسط جعفر بن محمدی جعفر بن محمد پسر حیاشیست که کتاب رو به وعداد آورده مثل جهفره نمحمده مسعود پسر حیاشی توصیق روشنی هم نداره لکن در یکی دو مورد که این احمد نهدیه هست حسین ازن احمد نهدیه تصریح شده جهفره نمحمده نخوله به <تصفيق> اطلاعا ذهنم رسته روی پسر حیاشی و این ایک مشکلیه یعنی امی واقعا <تصفيق> کتاب نجاشی در دیگر اصولا مشکل دارم نیم همیشه همه کتب همه علم ما مشکل داره نمیدیم همه بازی نمیحل حل همه زن که اونتونسی نحلش چرا؟ چون مرحوم ابن حولب جهبر در بغداد بوده مشهور بوده فهرست داره خود شاگرد شاید بسیار مزرزواری مثل مرحوم شخ مفید داره شیخ مفیش و صحبت عمل کرده هم نجاشی و هم شیخ توسی هر دو از شیخ مفید ازشان نهارم میکنم نمیتونم این چی بوده یه مقدار میراس های اسمال ابن حولبه فقط این حسینه نه احمده نه هدیه نهارمون آدم فقط نجاشی ثابت نبوده ایام قوم بوده نیم کنم منم همونوز اصلا هیچ سادر نمی داره واقعا برای ما ابهام عجیبی داره اصولا ابن قوله در کتاب های کدمثل فارسی کاملی شو از تشریح اراده میکنه مثلا اینکه قوله ابن قوله نگید که باز اشتباه شده میشه همون جعفر محمد پسر اندهید پسر عیاشی بشه شاوله حسین محمد مال هم سمرقند یا اومد بغداد بنامش شاوله به هر حال این سند موجود غیر از حالا اون جهات دیگری که مرحوم استاد اون آیه هم نوشتن که این شخص برای به نشناختن حل نمیشه در شواهد وصوبش خیلی زریفه نمیفهمه سر در نمیمیمه رفتش نفهم میگیم این کیه کجایی بوده؟ این جعفر بن محمد هلکه هم در ذهن ما وقتی بیا جعفر بن محمد از کشی مراد کسر حیاشیه اما در خود نجاشی یکی گمه رو داره جعفر ابن محمد نقوله به این کرده همین حد نهدی هم نهار کرد نمی کنیم اصلا طور کلی سردر نمیدیم این کار نجاشی رو انفراد نجاشیست از جهاله اصولت حل رفتش هم نفهم دیم رفت و زفتش هم نفهم دیم یعنی واقعا ابن نقوله رو دیده کتاب کشی رو نقل کرده چطور این رو به شیخ به شیخ توسی اجازه نزازه که اون شیخ مفید و به شیخ نجاشی شیخ مفید نمیتونه ما الان سردر هنوز که اگر آخرون در تا سردر برداری دو سردن. پس این عبارت نجاشی اون رواهنها را حیاشیش هم مشکل داره این خود سند ایشان هم مشکل داره خود سند مشکل نه که ما اشتال میکنیم به نجاشی نمی پهمید اشکال سر ما گفت مشیل از خودتون <تصحیح> سر ما ما با معلوماتی که داریم این رو نمیتونیم حل و فصل تاریخی بکنیم این گیر داره با معلومات ما گیر داره اشکال به نویشی بکنم قال حضرت سلام محمد و نعمره نعدل عزیز کشی انهو. حالا سکن گیر داره ممکنه حتی انهو برگرده به ایاشی ممکنه <تصحی> <تصحیح> باید گیر داشت انحور برگردنن به نصب سبا ها بیون و لذا مثل قاموس اشکال کرده که اول گیره با هنو را ایاشی بعد گیره با هنو را کشی گیره شده انصافم گیردار یعنی با قبول بکنیم که مطلب خالی از گیر نیست اما محبوم شیف از کل این شیف در هیچ جای فهرستش از این ابن حدیه نام ندارده لذا کلن این کتابهایی که مرحوم اجازه رو که مرحوم نجایشی از این نهر دیگه داره کلا در فهنس شیح نیمونده این که خیلی خیلی راحت. هم قفلت هم نیست از شیح اصلا همچه اجازه نداشته یه مورد هم آزش رقل نکرد اینه که این خیلی قفلت یا عدم توجه نه اصلا اجازه نداشت. اما در رجالش متعرض شده این طور داره شیخ هم نصول نسبا یا سبا یکن نا اول قاسم نه اهل برد خب بلکی این هست لقیه جلتن منکانه فی اصر من مشایشه بر این نکته زیادی داره که در کتاب نجاشی نیامده این که من میگه تحبز و تحبول. این مثلاقش اینه مثلا شما بگید ما نجاشی که نداره تو کتاب کشی هم کشی باید گفته به نهل ارتفاع پس این ما از شیخ تعبودن قبول بکنیم لغی جلتن جلت منکانه در کناب ما جملتن جمله نید جلت بزرگان شاید شیخ میخواد بگی ایشون با یه درست بزرگان ملاقات داشته من المشایخ کنی و العلماء خوب دقیق کنید لقیه و غواه اونا به اجازه دادن بیشون از اونا نرمی کردن الا انهو غیر کانه منه تیاره تیاره؟ نه اینکه هم تیاره هم در واقع که ایران بینه ما نه اینکه هواپره ما بینیم از کسانی که غاله به غلوب هم در شمعه همه غاله غالیش رو از کتاب کشی گرفته این واضحه این تعبط توش نیست پس مرمون شیخ یک نقطه اضافی در اینجا داشت لبیه جدلت منکانی فی اصلی من از مشارقه و, و روا و روانه این رو آیان تعبد میگیرن که ما راهی نداریم الا کتاب شیخ بنده از کردن که سر یه ما این است که مقدار تعبد رو هیگی یا نیم پایین کمش بکنیم این مطلبی رو که شیخ گفته درست هم هست ما هم حقیق میکنیم تعبد هم نیست این نقطهش اینه که در این کتاب کشیه موجودی که ما داریم با این که ترخیص شده مقدار تنابیهی روایات این شخص موجوده در آخرش این چاپ مردم های مستقری تعداد روایاتش اوبرده حالا سه در چاپیشون تکرار ها رو اشار نکرده در همینجا مثلا نشته روا انفرد نشازان دو تا حدیث نه یکی هر دو تقرار یکی یکیه دو تا نیست یعنی ت مقدار تکرارش مثلا حدیث واحدی دوباره دو برده ایش تقرد فرمودی و چون کتاب کشی از در خیاب شیخ بوده به نظر ما مطلب یعنی که شیخ رفته از کشی درده نه که کشی نوشته شادم نوشته بوده حالا هر شده و نرده شده الان ما وقتی این کتاب این کتاب کشی یه این مقدار روایاتی که توش از نصر از سباه می دونیم مثلا رواه احمد محمد نویسای اشریع قومی او خیلی بزرگوار احمد محمد نیست. یعنی تحقیق می کنیم به نظر حالا مراجعه با من برای اینکه چند لحظه برای این در آخر کتاب به نقل ایشان حالا آیا دقیقا همین طور از تمازیاتش که بعد خود رو مراجعه بکنم من چون خیلی خودم شخصا تطویقه داشته تطبیر کردن همه شه تطبیر نکردن بله مثلا روا ان بله روا ان احمد ابن محمد ابن عیسی که دوست و چهار چهار تا یکیش یکیشتانیست درست باشه سه تا از اون حدی کن روا ان تزل ابن شازان این ها عجب لن راست در حرفشه درست ربا عن فضل نشازان اینجا دو تا حدیث نمیشه دو شماره اما یکی حدیث تکرار در کشف شد بعد ربا عن اسحاق بن محمد بخری لازم نمی شناسیم بلکه خود کشف گفته کار نهر ارتفاع این یه دوره عجله نیست و ربا حسن بن علی بن عثمان الملقب بسجدہ اینم از فولاد اینم خوبه از فولاد از ایشون هم یک و دو سه سه تا حدیث نه. احتمالی که ما می دیم این از که در اون نسخه اصل کشیدی شدیم بوده پس این هم روکن شد کلام شیخ توسی تعبد نیست خود ما هم مراجعه کردیم همینطوره. و این هم خودش یکی از علاقه بوده این که استاد اصلاح دهن که علاقه بلاشن. این که کسی بینه پیش که از بزرگان حاضر شده و از اجازه یه روایت گرفته خب جمعه علامات رساقتش هست میشه قبول کرد یعنی این که بیشتر روایاتش از یک شخص مجهودی به نام اصحاق محمد بستی که به تابیر کشی و زبه پلاته وقتی میاد از حضر ابن شازان و از مثل احمد که احمد کاملا دو به دو به مراتبه به شده زده قلوبه معلوم میشه که به هر حال ایشون در طلب حدیث رفته و اینکه در برس بوده حساسی اهل برس بوده ایشون رفته و به قم رفته احتمالا تا بسته رفته به نظرم حسن علی نه عمی عثمان سجاده به نظرم کوفی باشه تو هم الان اینطوره نسبت کلی نیم درامو کوفی باشه این معنیش اینه که ایشون از برس در طلب حدیث اول قدیمی ها رحلتون پر حدیف لحول رحلتون سفر کردی خدمت مشاید رسیده بزرگان رسیده راسته و دقیقه هسته شد ما الان نه کلمات نجاشی رو به استثناء رواهن حال ایاشی رو حمله بر تحبود نکردیم کلمات شیخ رو هم حمله بر تعبد نکرده چرا؟ چون شیخ از مرغوم کشی گرفته و اون چی که از آن در کتاب کشی هست معیل خیلان شکل هست حالتای واقعا مثل آیان بعض از آیان مثل هم وحیل یکی از راه که رفتن برای توصیحیشون همین عبارت شکل هسته لقیه جلت منکانش بیرسه اجمان هم برای این خب قابل قبوله مخصوصا شکر خبته لقیه و رب این دوبارمیش مهمتره چون ممکنه مثلا فقط فرض نشازان حدی اما رواب به نحر اجازه از ظاهرم تقضی میکنی؟ یعنی از پرد اجازه روایت گرفته این اش اجمالا نشون بوده اگرم جزء خلاص بوده ظاهر حفظ میکرده یا بعدا بزنه غلاس شده هر از اینجور نبوده یک چهره سرشناسی باشی یکی غلاس با فکر نکنم احمد دو اجازه میداده احمد رو به محمد رو ایسا و کسا به ترد نشازان یک مثل فخر نشازان چنین شده نوادر علمای موصلی واقعا فرآورده هستند در بخش معقول هم در بخش منقول در منقول هم هم در بخش سنی و هم در بخش شیعه معقول هم چه بخش معقول دینی و غیر دینی چند تا از اون حرف در مثل شبیه فلسفه این و اصطلاح موسمی سوالی در است. اگر واقعاً مراد این باشه رسالتون خیلی معنی میشه ایشون هم به مسائل این و فلسفه آشونی داشته هم با اصول و معقولات دینی معبولات شخص کمی کم نیست از نشازان برها اگر این عبارت شیخ اگر عبارت شیخ از تشکیل گرفته ظاهر کشکی هم همینطوره و این دلالات بر انصافه یک مقدار شخصیت علمی ایشان میکنه اما به هرها من همیشه عرض کردم غلاط حتی اگر مراد از قلوب قلوب سیاسی باشه ما همیشه در باب خلاص بلاواد تراث ایمنی ترفی میکنیم نتیجه نهایی بحثهای ما حتی اگر ثابت بشه که قلوب اعوایی نبوده اولویتی هم نبوده یا قلوب عملی قلوب عملی کسان ده که صوری که نماز نمیخوندن روزه نمیگیرن ترک محرمات نمی کردن اتیار محرمات می کردن ترک واجبات می کردن که اسلام واسشون قلوب قمری حتی اگر انحراق عملی یا انحراق فکری نداشتن حتی اگر سلیم هم بودن قلات به لحاظ میراس اینی مشکل دارند ما خود نماز نماز طلاق الان خود سر قلات نمیخونی نماز نمیخونی نماز زن تلاقا ببیش الان برخورد ما با قلات سر مسال علمی حتی اگر قبول که اینا قلات سیاسی بودن افراد سنور اجتماعی بودن حتی اینو قبول بکنی عقائد مقدسی بود که نماز می خوندن روزی می‌گرفتن همه چیزا بوده اصلا فازون سیاسی بوده حتی اینا قبول بکنیم کلات اصولا به لحاظ علمی و لحاظ علمی خالی از شبهه این خیلی دقتی در این جهت نداشت دنبال این کار با خوندی مهم نکته یه و فا و با و وای اونایی کی بررسی بکنه خیلی حال این کارا بیشتر دنبال معنا بودن تا خیلی دنبال این حالا یه حاله میراث گلاف یعنی این بخش کلیه بحضت ما راجع به گلاف این نیست که بگیم حتما رب بکنیم مثلا بگیم کلیوی 900 مورد از تحقیل زیاد نقل کرد و هر حال گلاف باید باشه تحملی بشه باید یه توقفی بشه تحریشی بشه. بشه که مطلب را قبول بکنیم یا نکنیم یعنی میراث گلاف که در نارسید این نتیجه نهاری مثلا یه طرح مثلا اینجای از این باید توقف بشه که این عبارت امام فرمونده این نام آشر و این آشر نعم رو مثلا تکیال انا به لحب سب اگر این جروع وقتی دیگه نیامد می که اینجا خرابتایی روش شده <تصفح> <تصفح> پس ما نمیگیم چون غالیه یعنی حتما اللهی باسه نه اونها نیست یا مثلا ازده میگم غالیه کسی هم نماز نمکن اونم نیست هست اونم سر میشم و من ممکن علی عبادت، خضوق، خشو و همه چی بوده خیلی هم نماز زیاد بخونده اما جز خط غلوب باشه لا هم مثلا سیاسی هست تقرد می ما الان دقیقا نیمیدیم نفرن سوا به چه عنوان غلوب بوده احتمال داره در غلوب سیاسی باشیم مثلا نماز به هر حال میراث خط غلوب خودش از خط غلوب حسابان محمد جوزه خط میراث خط غلوب تنقف میکنه حال یعنی, یعنی بیشتر شواهد رو باید نگاه بکنیم مثلا اگر رواد از ضرر بیاد خود ضرر 80 درصده ده فهم می‌کنه چه درصد شواهد نگاه بکنیم اما اگر مفضل هم از خود مفضل, هم از خود مفضل هم چه درصده چه دیگه وارد میشه میشه فرق میراث یعنی خوبهای خط و که باشه خوب نگاه بکنید این فرق این دو تا خط با هم. یکی را سوگم شون چون نتیجه نهایی تغییرشیه چون اون نتیجه نهایی اینه مثل محمد مسلمان مثل زورا درصد، ده درصد شواهد میخواد نهاد درصدن بس. چون از صد درصد نمیتونیم درکی بیاریم شوالیه. ده درصد گذاشتیم مخصر فردی فرقی 90 درصد شواهد دو خود زورا هشتاد درصد شواهد دو اما اگر بود اون فضل شک شد درصد میادیم ما با سی درصد که بهش اضافه کنیم اگر از سهل مزیاد بود پنجار درصد میادیم با چه درصدی که بهش اضافه کنیم این مراد ما اشتباهه یعنی از داخل خبر نمیتونیم به جای برسیم با از خارج حالا اینجا مثل نسل سباه که اهل که احتمالا احتمال میدن گلوبه ایشان گلوبه سیاسی بوده احتمال میدن. گلوب سیاسی باشه احتمالا اگر این شما گلوب هم باشه میراس های علمی توقف داره این پاس اون پنجاد هسته چلی هسته وقتی میریم لفظ صده ما در هیچ روایتی نیامده طبیعتا قبولش که میتونی شد وقتی رسیدیم به شباهد خارجی در شباهد خارجی همه منفی هم. اون چه در اولی هم از به میبینه نجده در که اون 6 درصد میاد پایین. حالا اگه من بخوام اون حالت وسوخ رو به عدد بگم، اون حالت روان‌نخشانی رو که اجازه کی پیدا نفسانی، بخوام به عدد بگم، به کم بیان بکنم، وقتی که حدیث رو می‌بینی، استفاده 6 درصد ما میاد. وقتی به شواهد مراجعه می‌کنین، هیچ پیدا نمی‌کنی، اون 6 درصد میشه 5 درصد میاد پایی. به جایی که بره بالا، میاد پایی این اصطلاح ما که از حجیت اون میاد. این راجبه از یه تحریکی هم از عبارت شیخ دادیم و شیخ هم معلوم شد چرا در فهرت میشون نهارده در رجال هم که امرده به نظر ما کاملا واضحه که از مرموم کشی گرفته من یه نکته رو اینجا رو ارز بکنم کتاب کشی که به بغداد آمد، متاسفانه بین این دو بزرگوار دو دیدگاه مختلف پیدا شد اینو خوب دقت بکنید این منشئه بعد مشکلاتیه که الان باهاش رو هستیم نجاشی یک کتاب اون کبیر میاندا نهو تفسیر اعلاط حاجی کتاب کشی این عبادی نجاشی شیخ میگه در اون کتاب اون کبیرون تفسیر الطوال حسنون شیخ به کتاب کشی اتفاق داره نجاشی به کتاب کشی این اینا در نظر داشته روسی نجاشی میگرد که علمون کسیر تو جمع با میشه باهم اینه اقلاف تکریف داری نه اقلاف تکریف داری یعنی از بلاحاز مطالب و بل نظام نجاشی خیلی کم از این کتاب اعتمادن نقوم کنن البته نجاشی اگر کتاب رو اجال داشت بیشتر این کتاب رو انتقاد میکن الان مجموعه میبرن پونزه مورد بیس مورد در کتاب نجاشی عبارات کشی رو میاده و رد میکنه قبول دیم. و حتی با نجاشی منان استخلاف چند رضای رساله کوچیکی شده مواردی رو که نجاشی از عبارت کشی اوورده و قبول نکرده توضیحات هم برده و نصبه ابن داوود الان ابن غذاری نبو نصر نصبه هم در که در... در... در تمام نسخ ابن غذاری نیست در بعضی از نسخش هست ظاهرن ابن غذاری هم همون عبارت کشی داشته چیز خاصی نم و برده بعد ماه خودی مواردی رو بله نفر کرده که در خود کشی گفتیم آقا غالیه درسته مطابق درست لکن ادهی از آقایان علمای متأخر، من از کردم در دنیای شیعه یه مقداری بحث های رجالی جمعه های تعبدی داشت هر حرفه ابن،, ابن داود و حسن ابن داود و حرفه علامه اینها تقریبا حتی بجیزه مجلسی اینها تا زمان بعد از ها مثلا اخباره که خیلی تأیید کردن اخبار یا مثلا اخباری که میتون تایید کنه رو مبعود وحید بهبهانی یک تحریک جدیدی رو با انصافن گفت ایشان شروع کرد البته رجالی هایی که قبل از ایشون بودن بعد نبودن اما ایشان سعی کرد یک تحولی رو ایجاد بکنه یعنی با اون مقدار تعبدی که در خلاصه علامه بود یا نجاشی بود سر کرد رواد دیگه نظام بکنه یک تحولی از اون زمان و بعداً توسط جمهوریات مذهبی سال انشادری وقتی صورت زد تقریبا میشکوکات قرن 12 تا 13 در رجال ما یه تحولی پیدا شد که اگر بخوام تقریبا بگیم ریشاوی بود در این محیا بیشتر باید به کلمات مقدس اردبیلی برگردیم هستیشن در بحث شعر شده اما شروع کرده به منافشاتی دیننل رو در رجال که از اون های خارج بشه. مثلا وحید داره که چطور میشه نصر ابن سبا غالی باشه با اینکه در کتاب کشی خود نصر ابن سبا به اده حمله بکنه که اینا غالی هم مثلا نصر ابن سبا در ترجمه کشی در ترجمه علیه ابن حسکه ظاهرا حسکه یه مجموعه از درد عربی یا فارسی باشه حسن چیا؟ کیای جهد جهدش حسان بود حسن کیا تحقیق میشود حسکه میشود قال نصر ابن سوا علی ابن حسکه حالا اینجا هر وار مرشده آمده مرشد. چند رو زرد من نانی آکی بود علی ابن حسکه کان استاد عبل خاسم شعرانی مهل غلاط کبار ملعونو این آن وحید گفته این عباراتی که نگاه میکنی بعیدیشون رو قالی بدونی یا در ترجمه خواتیمی داره در خود که قال نصب نصبا این حسن ابن حسین ابن علی کان قالیان هم یا در ترجمه چند نفر داره قال نصب نصبا الانباسون صدره و اول انباسه حالا این نم هم زبط ترنانی تربرنانیه نمی نمیدونم ترینانیه نیمیدونم که اسمش ابو عبدالله که بی از محروف به شاه رئی احتمال داره موزم در هم مراثق و اون برای خراستان بیدن احتمال داره کانونه در کبار مرهونی به این مثلا تا و قرم دوازده های مسلم گرفت شد گفته ندرسی گفته ابن غذایی گفته علامه گفته ابن دارو گفته تموم شد یه فعباد تمام شد این شروع شد توی شیعه از قرم دوازده ها و سیده های به شدن که ریشه های اون رو تو که من دیگم من استخصانه کردن شد در درسته رو نهیده باشن چرا سه به استخصان به نظر این اولین کارها و به شروع اجمالی تا در توضیحات بیشتری می و لذا گفتن بعیده ایشون غالی باشه وقتی ایشون بیدیان همه حمله میکنه غالی خودی چون میشه از باشه من رو آقای خوبی و یوم کنون جواب اندارک و اندار غلوم در بود درجات و لا مانع من انیقون شخص غالیم به مرتبه که و یل آخر اشد به نوخه غلوم مطلبه که ایشون پرموزن مطلب خوبیه درستیه. اما نتونستن تحلیل بکنن من از کدر قلوب دو تا ستون فکرات اصلی داره یکی قلوب فکری به انحراف فکری یکی انحراف عملی این اساس قلوبیه این اساس قلوبیه اولیش بلیش که انحراف فکری این اساس قرآنی داره اصلا قلوب رو از اونجا اطلاف کردن یا اهلت کتاب لا تغلوبی دیگی نکن چون در قرآن آمده برود اونا که ادعای بولوغ الهی این منشأ شد هرکسی قال به اولوحیت ائمه و المومن رسول الله شن غسان از ادعای بولوحیت رسول الله در یک تا فراشی میشه اینکه باهت با به منصور دوانیگی بودن خیلی عجیبه دوره عکسش میچرخیدن به می گفتن این که راست درک را. نمی کنه من بولوغی تخیل نمی کنم مثلا منصور در بین خلفای بنی عباس خیلی ظاهر صلاح. به ظاهر الصلاح اهل فسخو بجورد هر در این فسخو بجورد زاهری هیچی نروه خیلی هم بود و خیلی هم اهل سردمان نبود و خیلی هم ولیکن خیلی خونخار بوده طبیعتمون برای شدیه آدم خوش بوده چون دو آدم خوشه افتاری شد علای که که ما که این حالا در این علوهیت و یک نهره غلوبه یک چیزی در حدود ساله های مثلا اوائل اواخر بنی امیه احتمالا حدود سالهای 128 شروع شد که قلوب انعرافی بود در کوفند این کار شروع شد که اصطباهم بعضی هستان بینا زنازقه میگفتن با این که نماز میخوندن روزه نمیگرفتن شراب میکنن, میکنن, میکنن اتا در اون رواز داره که زنای با مخارم میکردن و این رو تحت شعار اعراف سر امام تسنه ماشه این قلوب انعراف عملی شعارشون رو این بود امام رو شناختی هر کار رسمی اونها این دیگه اهل قرآنی نداره این توی شیعه پیدا شد و اون در کوفن پیدا شد یا در... که به شدت با اون مبارزه کردن اما از کردم در همین زمانها یه چیزی دیگری به نام غلوب پیدا شد و اون غلوب سیاسی بود مثل مفضل ابن آمد اینا سر می کردن زمینه را آماده کنن که اهل بیر امام سادر به خلافت درستن غلوب سیاسی یعنی گروه که در صحنه جامعه حرکت سیاسی میکردن یا حرکت مسلحانه میکردن مثل ابو خدیجه سالوی مکرن یا مثل خود عبد خطاب که رئیس انقلاب یا, یا مسلحانه شد با هفتاد نفر با شعار لبه یا جعفر حالا امام صادق در مقابل لعنش میکردن به شدت هم لعنش میکردن این با شعار لایق خود خودش تمام اون نفر به استثنای یک نفر هم کشته شدن. من نمیخوام این بحث بشن. یه شب این بود مثلا جابر بن یعدیه رو متهم به قلو شده این قلو مشتا قلو نیست هیچ کدوم از این قلوها نیست جابر بن یعدیه جابر یه یعدیه یه نبره اواخر بنی امیه دیدی که یه فضا هست از کده در مغز جریان شهادت زید دیگه بنی امیه دارن در کوفه چیزی دیگه اون قدرتشون نداشتن موظف که یواشا در خراسان داشتن علی بنا قیام و سلاح میکردن. به خاطر جنازه یک پیدن تا موقع چهار دار بود مردم رفت میشدن میدیدن یک نفرت عمومی از بنی یه بود مرگوم جابر نیزی برای اولین بار علم تو محسید از بین شیعه که مسلم بود حد دستانی وسیعی و عوصی ها محمد نهلی این امان که مردم نبانه یعنی چه وسیعی و عوصی ها این جابر خوب دفت بکنه قلوب و اون این که مرمان ما در جایی باید بعضی از جیره که سارتان قلوب بوده جزا عواهد ماست این قلوب نیست که به جابر نسبت داده شده پس لقت با ما ایسید کلی نداریم اینا قلوب هاشون میکنه درجاتشون فرق راست هر با آیتونی. این این قلوب سیاسی بوده قلوب اقبادی بوده قلوب عملی بوده انحال مختلفی درجات, درجات نیست ذهنیات نه مکاتب مختلفی روده و لذا منم احس کردم این هم نیست که مرغوب نصف نسبا سبا قلوب سیاسی داشتید خراسان طرف اجتماعی داشتن علیه السلطان مثلا میرو جمع میکردن کارهای اجتماعی از این قبل داشتن این برید نیست نه درستم بکنید مثلا من آهان چون دفت نکردم در تمام من همدن این موارد خوندم در تمام این موارد که ایشون شخص و متهمد و بلو کرده یه مرمون هم پشترش رو بگرد در از این سموره علی ابن هسته که کان استاد عبدالقاسم شهرانی منرخی غلاب الكبار مرمون هم یه مرمون هم داره توازیمی کان غالی هم مرمون هم پنج نفر سشار نفرم اسم بوده کان منرخلاب الكبار مرمون هم ی نگه دارید خیلی دقیق بودن این اما راجع به خود نصب نسبا کاشی یک کلم نادری اتفاق معلوم کشته تریست نبوده؟ در دعوی این است کاشی یک تاب در چهار پنجمه اداریه این صفحه بین می‌ریلند؟ لکه معدوم میشه با تمامی حرفها چرا الله علی هم میکردند؟ احتیاج به هم الله علی ندارد کاملاً بازه، دکتر یعنی یه قاضی و معلوم. این که میگه قانون. و ملحوم به نظر من هر سمویدی که اضافه این اضافه برده اضافه او نه هم اقداما در تمام این موارد من فکر می‌کنم این مثلا همینجوری پیش ناومده این اشاره باشه که اینها به انحرافی داشتن نه قلوب سیاسی قلوب اینها یا انحراف فکری بوده یا انعراف عملی بوده این که بگه ملعون مراده از ملعونیت اینه خودش احتمالا مصر ابن سبا سیاسی داشته این مطلب درسته این مطلب مطلبه مطلب نه نه یه دونه که خارشون از بست داره این که گیریم نوکات لطیبی چیزی ها دیگیم زودی ها پیده نشده